برخیز و بده باده چه جای سخن است، کمشب دهنه تنگ تو روزی من است، ما را خیش خیشمه گلگونده، که نوبت من چو زلفت تو پرشکن است. بر ترز سپر خاطرم روز نخواست لوح و قلم و بهشت دوزخ میجوست، پس گفت مرا معلم از رای درست، لوح و قلم و بهشت دوزخ با توست. آن را که بر نهال تحقیق نروست، زان است که اون نیست در این راه درست، هر کس زده است دست در شاخی سوست، امروز شده ای شناس و پردار چون خواست. اکنون که جهان را به خوشی دست رسیست، هر زنده دلی را سوی سهرا است بر هر شاخی طلوع موسا است در هر نفسی خروش نفسی است.